آه، را از شب بحث واجب دلیلی بود که حضرات به سیره تمس رو کرد بودن برای حضرت خبر و اشکال معروفی هست که از کنم از در اصول آمده و این دلیل رو اصولا ذکر کردن برای این که کلا کلن حجت نیمسان دلیلش مخواد سیره باشه یا غیر سیره و اون اطلاعات کتاب که این نظرنه در حق شیا. این اشکال از قدیم بوده اشکال معروف بر عدم و خبر واحد. لکن در کلمات اصولین ما این اشکال در خصوص سیره به نحوه دیگر مطرح شده که اگر سیره و باشه بر حجید خبر سره، آیا این اطلاعات کتابی میتونند ایمانه از این سیره روشن رو بگن این سیره درست نیست؟ این صحیح نیست؟ شما در احکام شرعی باید وصول و علم اطمینان پیدا بکنید به مجرد خبر سقه عمل نکنید از کردم اهل سنت بیشترین قسمتشون تمسا که با یه نبه به حدیت خبر عرض نزا خواهی نخواهی با این اشکال مواجه نیستند. کسانی که, که از علمای ما مثل و استاد خودی بیشون بایدن که سیره و قدار خبر سفر است و این سیره از طرف امضا شده البته امضاش کافی کافیس عدم رده. و به تعدید دیگرشون عدم سبوت رده. همین که بعده نشه کافیس داره امضا یا ثابت نشده و لظ خبر سره حجت مجر از بوده این خلاصه نظر بارکش در این مطلب اون اشکال کردی که بود این رو در اینجاشون به تغییر دیگری مطرح کردن لذا ما متعرض شدیم خلاصه بحثی که در اینجا مطرح شده که آیا اطلااقات میتونن جلو سیره بگیرن ال تغییر صوط ها حالم که سیره گ داشته باشه سیره اوقلا یا بنا اوقل از کردیم که اشکالی خوده که نه این آیه ادهی گفتم برده این آیات ناویه هستن رده میکنن ای نا نیم ای این ندارن نه لایوب نیونه را حده شدیم که آب که این آیات سلامیت ندارن بر رده چون اگر بخوان رده بکنن مبنیست برای اینکه که سیره مخصص نباشه چون اگر سیره مخصص باشه دیگه آیات را سیره نمیشه و اگر میخواد سیره مخصص نواشه باید آیات راده باشه پس دور رازم میاده اون اشکالی که دو سر روز دروز مزهر از هرین بعد از اشکال دور این اشکال دور که کفایی آمده ظاهر عبارت هم با این اشکال معافقه که در راده ایم رو که منوازی ها به عکس اشکال رو در مخصصیت سیره میگیرن که دیروز خوندیمه بایدیشون و ظاهر عبارت مرموم استادم همینه ایشون هم, هم اشکال در مخصصیت سیره اشکال دور که دو, دو روز صحبت کرده البته خود مرموم استاد دلیل جواب دیگری بزرام جواب شد مثلا جدلی داده باشه قبول کردن که دور نیست و این سیره ثابت و اصولا یقین داریم که متشبعه به ماه همون اغلا به خبر سقه عمل کردن با اینکه این آیات هم وارده در وارده شدن بعدم از راه ورود وارد شدن که ادله حجیت سیره این سیره وارد است بر آیات که توضیح بودش بعدم غالب به حکومت شدن نه تخص تخصیص این بحث ها تخصیص بود راجب تخصیص هم نشان باردن و اصلای ناینی نا حتی از الان سره قالب تخصص شدن از مورد سیره از آیات خارجه و من موازی اشکال کردن بیشون و قبول کردن که اگر در امور ما آشو باشه این مخصصیت سیره دور رضا میگن این خلاصی بحث که گذشت از کام خدمت با سؤالتون که بعد از این بحث ها حالا غیر از اصل بحث که آیات مبارکه شامل خبر می در و ترضی یا نه را چه این مسئله دو رو تیفیه ده مسئله باید یک تحملی باشه اولا در خلال بحث در مختصری که بحث شد کاملا برای این واضح شد که اینها توسط به اطلاق یا عموم آیه کردن این نظرنه لایقونی من از حق شیا که زن مطلقا مقنیت حق و واقع نیز شما رو به واقع نمیرسون در سوره مبارکی حجران تران آیهی ای که متعرض قیبت شده لایختم برزو کن برزا اولش داری هایی هردین ها منو اشتنه بو کسی رمونم دارد اشتنه بو و چون بعد بحثش قیبته یعنی بیان خبری از حال شخص معلوم میشه که در اینجا است برای مسئله قیبت و از این بعض از زنه اسمون بعضی از این زنگناه خب اگر ما این دو تایر رو با هم دیگه جمع بکنیم و از کنه از از سنت مثل این کتاب تفسیر قرصوی در زیگه این آیه نوشته که از این آیه فهمیده میشه که زن دو جوره یک بعضی از زن اسمه بعضی از زن است. حالا دیگه میگه آبایی دورم ندردیم اجتنه بو کسی را منمون ان نبه بردنه اسمون اسمون پس از این آیه مواله که در میاد که بعضیاش گناهه و به تحبیر گرتبی زنی که معتمد باشه برای حجتی مثلا سری اغلاق باشه زنی که ناشه از گردنگ خوب باشه زنی که ناشه از باشه که من رو مصرم نسا زنی که ناشی از قول وکیل وکیل یه شخص مطلبی گفت اون قول حجته لیکن مفید زنه پس اولا اگر با خود آیات نگاه بکنیم مجموعه آیات در میاد که در شاقه مقدس بعض اقسام زن از اسم خارجه میگه ایتیاری بحث دور تمامی بحث ها و دور از این طرف و از اون طرف چه اشکالاتی لازم میان؟ خب بحثی اینجا پیدا نمی کنه خواهی نخواهی مثل خود قرآن می کنه اشتنه بود کسی را می این نوران نه افمو و نظام مشهور بین علما احجی سنت در علماء ما هم مثل محقق قومی قائل به بودجیت زن در افکام شرعی هستن از هر روی زن برای ما پیدا بشه به افکام شرعی به خاطر با در زمان رسول الله اون زن هجته تسریحی که اون زنی که پیدا میشه حتما یک مقدماتی میخواد مثلا سیرهی میخواد خبر سقهی میخواد چیزی میخواد اون زن خود جیهت داره پس اولا با مراجعه با آیاتی دیگه یک عموم به اطلاقی که شما تصور میکنی این وجود نداره. ظاهر آیات اینه که بعضی از زن اسم نیست از اگه خبر سقه سیر اغلا برش باشه مثل زواهب که من رو مستاد بسال بودن وکی. این ها با اینکه مفید مفیده زن هستن اشکال نداره نمیشه در باره نگفل آیو این هرگه شیعا این اول مطلب مطلب دومی که در اینجا هست استداله بین آیات مبارکه متوقف هست یک اینکه که آیه مبارکه تعبدی باشه مولوی باشه یک حکم مولوی خداونده متعاد فرموزه باشه و اما اگر بنابرای این بگذاریم که آیه مقالا که ارشاد باشه به حکمه و اصولاً مفاد آیه مفاد حکمه عقله چه عقل نظری چه عقل عملی هم در مقام عقل عملی شما به زن و گمان اعتماد نکنیم ان زن لا یهب نیم اینه حق حق واقع هم در عقل عملی شما اعتماد ولی تقف مالی ماله که بگه این آیات مبارکه نازر از حکم اهل و این عقل ثانیه این آیات مبارکه به اصطلاح اطلاق لفظی هم نداره چون گایی یک مطلب عقلی هست اغلایی هست اما معذاله یک اطلاق لفظی میاد خوب دقت کنی خب اون اثر میکنه دیگه مثلا این شاید اگر در محل شخصی برسید در اصول قاعده فراغ رو عرض کردیم اجمالاً اوغلایی است یعنی انسان وقتی مشغول کاره بعد از کار کارش شکر بنا به صرح میگذاره قاعده اوغلا اجمالاً اوغلایی است ولی جناب مرحوم استاد هم به این درجه از قاعده و اغل... قاعده وسفرغ قبول داره نتیجهش اینه که سیر اوغلا در این جور جهال در جایی است که انسان حين عمل منتفق باشه اما اگر میدونه هین عمل خیلی حواست جمع نبوده بعد از عمل شک بکنه معلومیست قاعده فراغ جایی کنه این راجعه به سیر اغلا. چون استاد هم سریه اغلا جایی میدونن کرارن اگر حواشی عربه ایشان یا توضیح مساره شنده باشیم در جمعی این موارد قاعده فراغ میاد باید این عمل مرتبط باشه چون اغلایی از اون وقت روایت هم داریم که اگر بعد از فراغ از خب این روایت اطلاق داره نخواد می نعمن ملتفه باشه درک نباشه دلیل لحظی ما اطلاق داره سیره و اغلایی مغید است به ارتفاع من استاد سال روایات رو به سیره و, و اغلایی قائل هست هنده زیر قائل نیست همون مقداری که اغلا قائل مشهور مشغوره بین که خود بنده من در هستیم معتقل درست درسته اکثیر اغلایه هست اما روایات اطلاق داره چه مخواد این عمل متفق باشه یا نباشه مشهور بر این اکثریت بها و اصولی بر این هستن که یک نوع تعبط کرده شاره بعد از خراقه از عمل چه این عمل التفاتی باشه یا نباشه بقید شد این پس هست به طور طبیعی عمل طبیعی زیم ممکن است یک سیره اغلای یا یک مطلب پیش اغلای در یک دایره محدودی باشه تعبد که آمد اطلاق داشته باشه بیش از اون دایره محدود باشه یا کمتر باشه فهم نمی این دایره تعبد بالاست ما بیاییم بدیم در اینجا که این دلیل نظرن الله یعنی مند حق آ یک اغلاییست و شرعینیست دو این مقدار که در لسان دلیل آمده و ولو دلیل لحظیه این اقاده اطلاق یا عموم نمیکنه. و همون مقدار و آمده و اصولا اطلاقی نیست عمومی نیست به اصطلاح ما دیروز از که بنده عموم به اطلاق رو در جایی میگن که مرز داشته باشه که اصطلاق خودشون دلیل لحظی میگن وقتی دلیل لبی شد مرزی برش تصور نمیکنه، این صورت اجمالی صورت اجمالی از بحث نه اینکه که مرز مهگنی هر مقدار که زن بود پس ما میگیم اصلا اطلاقی در اینجا منعقد نیست مقداری که در لسان دلیل شری آمده همون است که اغلا دارن و لذا نکته مهمش نکته سه این گونه تعابیر اصولا قابل تخصیص نیستن اینا ها مثل این ظلم قبیه ظلم قبیه قابل تخصیص نیست نمیتون بگیم ظلم قبیه الا در این مورد ظلم حسنه این از قبیه زرب نیست ظلمه میکنم بگیم مثلا کس بگیم کس قبیه الا در فلان موارد حسن بشیم اما ظلم مادام ظلم همیشه قبیه ظلم حسن ما نذبیم بله شما ممکن است بگین زدن این بچه ظلم نیست و الله کل ما صدر علیه انهو ظلمون کل ما صدر علیه انهو ظلمون این قضیه فهم نمی کنه این جا هم ولا کف و چیزه که به علمون ارتکاز اغلایی هیچ هرگی در موارد نمی بینه نمی بینه که مثلا شما پیروی علم نکنید غیر علم لا علم رو پیروی نکنید الا در پران مورد بله ممکنه شما گیم این لاعلم ایست این ممکنه اما لاعلم یعنی جایی که انسان بصیرت نداره از کردیم علم در مفهوم عرفی یعنی وضوح علم یعنی وضوح ظهور هر جا وضوح باشه میشه علم لده ما اصطلاح علم و عرفی رو در مقابل علم به اصطلاح منطقی میشیم مثلا سر درصد باشه نه همین که عمل واضح بود ظهور پیدا کرد وضوح پیدا کرد بشه بشه و توضیحاتش هم از کردیم شواهد هم در خود کردیم لغت دوقت علم هم همینطوره کردم ها یه نوع, ظهور. نوع نور چه زار یه از که از راه که از قدیم هم بوده حالا که ذکر میشه اما از قدیم بوده در کلمات بیش از هزار سال قبل آمده که مثلا اگه مخانه علم و معانی شیدن علمه لمعه لمعه معنی لمعان معنی روشن ز ملعه میاند مختلف رو بررسی میکنن تا ببینه این عین لام و مین در لغت عربی این معنی بوده خود به قصدی ارسی خوده لمعه های, لماه های این با علمه یک ریشه هست یک ریشه به این معنی اینسته تا حرف این و لام و مینه حالا یکی لفه این اوله به لام اوله اون معانی مختلف شش تا احتمال به این لحظ داده میشه اون مقداریش که مستعمله هست به در مجموع معنای ظهور و وضوح خوابیده. پس علم به ظهور خب این طبیعی انسانه در زندگی خودش تا وضوحی نباشه دنبالش نمیگره. نمیگیم اینجا وضوح نیست دنبالش برو. اون نمیکنه. میگه اینجا ظلم هست اشا نره. و لسان این تعابیر عادی از تخصیص لسان لسان تخصیص نیست مخصصیت دور لازم میاد اصلا لسان لسان تخصیص نیست این نکته سومی که در اینجا گفته شد نکته چهارمی رو که ما سابقا هم عرض کردیم در همین عبارت هم که گفتن گرتبی اشاره ای داره توضیح نهده اشاره داره عرض کردیم روایی آیاتی که تعبیر به زم داره و آیاتی که لاهر داره اینا اصولا دو مصداق الان تو ذهنیت علمای ما یک مثلا مثلا اگر اعتقاد راجع بود که زن باشه میگن این در مقابل علمه زن در مقابل علم و مثلا خبر سقه مفید زنه خبر خبره مثلا طبیب بگه شما خدا مرز داریم مفید علمه قول وکیم مفید زنه قول وکیم مفید زنه این زنه ها میگن خارج شده نه این تصور, تصور درستی نیست معروم ناینی هم اشاره ای که از گفت که اصلا تخصیصا خارجی اما توضیح ندارم من توضیحش هرست میکنم اول به کلمه زن در محل خودش چند بار صحبت کردیم در اول بحث زندم با مراجعه به شواهد لغت و کتاب اولا ما سلطا زن در لغت عرب داریم یکی با اختتا زن این که الان مثلا امید داریم یکی غنه با صاد که هر دو هم در قرآن استعمال شده و ماهو علال غیبه به اون با اقتصاده غنیم یعنی مثلا فرض کنیم کمبود داشته باشه یا مثلا هرسی داره نشون نده ماهوه دقیقا برای که هم بر غیب و بر امور غیبی داری غنه به معنای کمبود و معنای هرس معنای این که اصلا اینسانی که کمبود شخصیتی داره سعی کنه اخفا بکنه ما از کردیم با مجموعه شوارد به نظر ما هر دو یکی هم نتا بحث کردن آروم و این بحثم قدیم آخیانه هم تا بحثی است که مستشدی مطرح می اصلا سالب ابن عباد رساله داره چاپ شده بلتر به واد و وا بین این دوتا مواردی که از این دوتا هست مثل این ونده ونده دوتا گفتیم انصافش بچینه که شوارد نشون بیده که این یکیه. و خلاصه معنای غنه و معنای زیغه. ظن خدا من بنده کرد ان اوان لایوونه حق شیعه. این خلاصهش به معنای زیغه صدر این اینکه به ادراک ناقص راجه باشه غنه میگن چون یک نوع زیغه ادراکی روشن دیده نمیشه از این گردونیام غنه و لذا مثل برغم نائمی هم میفرماید به اینکه که حجیتش این زیغ رو برمیذاره کاملش میکنه معنای حجیت به اصطلاحی ایستان مثل است که هشه ها رو میبینه در میمیزنه یکی عینط میزنه با عینط کامل می‌بینه. زن این طوری خود زن در لقطه عرب سر تصمیهش به معنی زیغه نقصان کاستی وقتی اون ادراف شما کامل کامل نشد یک زیری درش فیضا شد یه رو زنده. از از مجموعه استعمالات قرآنی و عرف عربی و از قرف اصطلاحی که بعد از هر و منطقی دو نحوه زیر میشه تصور کرد برای ادراک یک نحوه زیر اینه که خود اون صورت ادراکی زیر داره این همونی سی در منطق هم به کار بناره مثلا به جهه که صد درصد باشه 95 درصد در باشه 80 درصده 70 درصده این ادراک شما ادراک روشن روشن نیست بعضی از نقاط تاریک داره یا بقول الوسیا خاکستری داره نقاط روشن و خاکستری داره چون این نقاط خاطیستری داره میشه هم رشته زیری پیدا کرد یک زیری دیگه هم پیدا میشه در ذهن در ادراک انسان این زیر غیر از اونه. ممکنه ادراک شما کامل باشه روشن روشن ببینید بلکه معذاله کلی به ذهن الیش میشه چرا این اش نمره دوم این کاستی و نقصان دوم وذیقی که در نوع دوم هست منشأش در مستند این ادراکه شماست این رو در روقت اصطلاح منطقی ها حجت میگن مستند رو حجت میگن و نه خب در اصطلاح قرآنی سلطان میگن ما انزل الله بهام سلطان چه از تعبیر حجت زیباتر باشه در تغییر دیگر قرآنی برهان ها تو برهان همون برهان اون مستند و پشتوانه ادراکی شماست پس یک وقتی شما ادراکتون رو میبینیم یک وقتی میگه پشتوانه ادراکی یا به قول اموزی ها دلیل مثلا به جاهلیت مثلا چرا این کارا انا وجد نا آبا نا ما دیدیم ببینیم اولوکان آبا آملای علمونشه خب این مستحق خرابه و الا ممکن است مثلا با عوام زندگی کنید عوام اصولا به ادراکات خودشون اعتقادشون جاذب‌تر تا حتی فقها بدر خودشی سریعتر سریع‌تر ادراکاتشون جذبش پیدا میکنن و یقین یعنی پیدا میکنن به لحاظ صورت ذهنی درش ابهام نیست ابهامی که هست یعنی مشکلی که هست که تمام انبیا الهی و مست همین و علمای اخلاق مطرح شده مثلا هدفشون این بوده اون مستند و پشتوانه علم رو روش کار بکنن اگر اون مستند برهان باشه اگر اون مستند سلطان باشه این میشه علم اگر اون مستند خیالات و اوهام و بولان جدلی و مدلی و مشهورات و شعری و از اینجور چیزا باشه چی میشه زن نه اینکه که مراد مقدار ادراکه بلکه مراد اون پشتوانه یه شماست نه این که اون صورت شما هنوز زیر داره کامل یا کامل نیست پس این هم زنه و به معنای اینکه ادراکی است ناقص نقص این ادراک به خاطر این که اون پوشوانه پوشوانه علمی نیست سلطان به دنبالش نیست برهان به دنبالش نیست خوب دقت بکنیم این رو بهش میگیم ذن چون برهان نداره چون سلطان نداره و اعتماد و از مجموعه شواهد قرآنی این در میاد که هدف اصلی قرآن اون دومیه نه اولی خوب دقت کردید هدف اصلی قرآن اگر بیفرماد اتباع لاعر نکنید اتباع زن لای یعنی میدن حقی شیعه نظر اساسی رو خوشبانه ادراکیز است که شما از کجا این مطلب رو بودید این صورت ذهنی شما این حکمی که کردیم این حکم رو از کجا آوردیم ولذا اگر خود ادراک ناقص باشه حالا پشتونش خود ادراک اگر این ادراک ناقص دلیلی بیاد برش اقام بکنیم که من به این ادراک ناقص اعتماد کردن اون هم جزا زن حساب نمیشه یعنی اشکال در آیات مبارک این جایی که اشکال میشه اشکال در آیات مبارکه رو این جهته که اون پوشوانه علمی شما درست نیست اما اگر یک پوشوانه علمی پوشش باشه اون اشکال نداره اون جای بحث نداره ولو ادراک شما 80 درصد باشه ادراک 80 درصد اگر پشتوانه داشت اشکال نداره زن نیست اینی که مراد اصولی کاظم به هم بگه پس بنا این آیات رو به اون درجه ظهور بررسی نکنیم و که داله لا تفت مالی که بیهی علمان علم در این اصطلاح به معنای اونی که وضوح داره وضوح اون به وضوح مستندشه به وضوح پشتوانشه یعنی شما به دنبال کارهایی که پشتوانه روشن و دلیل و یا برهان یا حجت روشن برای اونها نیست به دنبال اینها داریم بلا سخف و مال ایتنه که بیه علمون پس مطلب یه مطلب ارفیست، اغلاییست قابل تخصیص هم نیست بگم روشنه اصولا در قرآن کریم همون سیری اغلا و از کردیم یکی از اساسی ترین کارهای انبیا الهی این بوده که راه صحیحی رو که در صفرت انسانی بوده این رو ابراز میکنن و مردم رو به او وادار بکنند. که امیر رو هم در همون نهر در داره, داره که سمب ترسن نبییم که لیوفی رو دفاعن الاغور این دفاعن الاغور همین جامعه هم می و ولذا این آیات مبارکه ناظر به اینه که انسان در زندگی خودش به دنبال ادراکی که بدون مستند صحیحه بدون مشتوانه صحیحه نره و بقیر بکنیم این که برای استاد نوشن مؤمن از اقاب اصلا آیه ناظر به مؤمن از اقاب نیست اصلا ناظر به این جرد نیست. یا مرحوم آرزی نا... ها ما بین معاشماعات هم روزستن اصلا آیه ناظر به آیه ادراک کلیه بشری رو احیاب میکنه، و اون که انسان در زندگی خودش به دنبال ادراک های ناقص زن یعنی ادراک ناقص نقصان این ادراک به خاطر نقصان پشتوانه ادراکی که اساس درست نداره ولو صورت ادراکیش برای طرف صد درست درست نوجد نا, نا آبانه علا حالا های نا علا آزاره صورت صد درست در هم هست قرآن بگه لکان هم داید مشکل نیست شما رو آبانه این قابل اعتماد نیست مجرد اینکه که وجد نا آنها، این قابل اعتماد نیست این پشتبانه نیست نمیشه رو این اعتماد کرد پس این نبغن لایو بود حق ش این نه اختصاص به تکالیف داره. نه اختصاص به بحث فقه داره مؤمن از عقوبت ما این اصلا به طور کلی ولزا این قاریضه رو شما در تمام علوم هم به کار میبرید. در تمام ادراکات بشری میان قرآن برای همه عصبای ازی که ماجرا شمس العربه شما تو فیزیک هم, هم اینطوری این تو شیمی هم همینطوری انقدر لایق نمی‌داره حفظش اینطور میگه این تو مؤمن از عقاب باشه لکن هر سنی، هر وشدهی، هر علمی اون تشویبانه ادراکی شرم میکنه بحث خبر سلی رو که ما در اصول مطرح میکنیم این یک بحث عرف خاصه. یعنی ما بحث که در اعتبارات قانونی خوب دقیق بکنیم در اعتبارات قانونی ولو در مستبای اعتبارات شخصی اخبار سربه کافی است برای تنجج بحث اینه این بحث و اصولیش اینه این شما آیه مبارکه رو این اصول نذ پس بلا اشکال در فیزیک شما این بحثی بحث نمی‌کنید شما اصلا تو فیزیک بحث تنجز نداریم تو شیمی تو نجوم تو ریاضیات شما بحثه مثلا شما بحث خبر سگه رو اونجا ما به ای که اینکه نه ده تا سگه شما در فیزیک مطلبی رو گفتن در دنیای علم از شما قبول میشه مگر خودتون ادله روشن و واضح بدید اصلا اونجا اخبار اثر نداره اصلا لاگوپسیتی این نیست که سیره اوغلاخیال از یک سیره اوغلا ماده بر خبر سره و از این آیه خارج شده اصلا نیست نه این خبر سره در تیپ آیه داره نه آیه به خبر سره داره اما که اول اینکه مردم ناینی اول فهمیدن که تخصص اصلا آیه مبارکه ناظر به مؤمن از اقوبت نیست ناظر به معاش و نیست که ایشون فرموده معاشش اینطور معادش اینطور اصلا آیه مبارکه ناظر به اینه که شما در زندگیتون اگر میخواییم به حق برسیم با ادراکات ناقص به حق نمیرسیم ولی ازا خوب دقیق کنیم فرمود قول هاتو برها نکن این کنتم صادقیم صادق این یعنی میگی مطلبی رو تو من میگم مطابقه با واقعه صرف مطابقه دیگه یعنی من به حق رسیدن اگر شما مدلی هستید که به حق رسیدین این ادعا و این, این صورتیده که شما ادعا میکنید در ذهنتون از حق ارائه دادید این باید به دنبالش برهان باشه. بله ها تو برهان کو. این معنای این نظر نلایو در حق ها زن به تنهایی مهمی نیست تو فیزیک هم همین طوره، تو شیمی هم همین طوره، تو نجوم هم همین طوره، تو فیزیک هم همین طوره، تو اصول هم همین طوره، تو کلام هم همین طوره. اینی که معلوم اول احتمال داد که این آیات ناظر و غواه اقوال باشه اصلا. ناظر بفیر نمیده. اینم دلیلی. آیات همه زندگی بشر رو میگیره. تمام لایا علمی بشر رو میگیره. و در تمام مرحله‌های و هر روز که بشر راه های بهتری برای وصول به واقع پیدا میکنه، باز هم آیه مورده که ظهور و بروز داره چون من احس کردم از مجموعه آیات چنین معلوم میشه که خارج از شخصیت انسان و خارج از ادراک انسان یک واقعی موجوده این در آیات هست دو انسان امکان وصول به این واقع رو داره الان ما بواره اینا مفروغان هست این من الان بارده بحث اصطلاح ما بود منطقه اسلامی دید مخابره این بحث بشن پس یک واقعی هست یک حقی هست یک صدقی هست و این که انسان در مراتب مختلف زندگی فرصوی صادقا فلسفه خاصی میخون در ویازیاد و فیزیک خاص الان یک جور دیگه بجرد. این باید شما در تمام مراتب زندگی این آیه مبارکه در همه جا صدق داره میکن صدق هر جاش مناسب خودشه. را نداره همون سیره اوغلاویز یوپی رو در پایان امور همینطوری که علما بقول میگن جمال الدین اسدادی گفته بود که در ایران اصلا در شهر به اصطلاح مسلمان هست اسلام در غرب اسلام هست مسلمانی حالا یعنی این تفکر تفکر اسلامیه الان اگر دنیای غرب مثلا الیچش راست کرده تمدن پیش راست کرده فرهنگ الیچش راست کرده بالا به خاطر همین ایده فلسفیه سعی ست کن در هر چیزی دنبال حق باشن ادراکات ناقص رو هیچ بفهمند این ادراک فلان چش این ادراک نقص داره این ادراک نقص داره مستعدی که برایش بود قابل اعتماد نیست هی سعی کن خودشون بیشتر به واقع برسونن به حق برسونن این اصلا بر... بله در اعتبارات بانوانی خود دقت نکن چون یک امر اجتماعی است فهم <تصفيق> رو. یه عنصر اجتماعی، ادوام مجتمع اون حساب میشه. در اعتبارات قانونی برای سیره اوغلا برای تنجس ممکنه حق دیگری مطرح بشه خیلی از فیزیک. شما در فیزیک یک نوع بحث می‌کنید در اینکه آزیاب به ذهن خودشون رسیدن به ما آ شماها، اجمالا هر دو آزیا درسته. نه اینکه در یک جان مثلا چنین نه اصولا آیه مبارکه قید نداره احترام به خطر انسانی به سیره به عقل سلیم انسانی که شما در تمام علوم در تمام معارف حتی در امور اجتماعی وقتی میگید این آقا در برابر اون آقا یه امر اجتماعی دو نفر گفتن کافیه میگید آقا شاید هرجوشو اشتباه کرده خیلی خوب اما جامعه فعلا قبول میکنه این آقا قراردادید بردر... این آقا قرارداد اینایی که میگن حجیه به خبر سقه به سیر صالته میخواد بگن جامعه بشری دقیق میکنی برای تنجد حکم در اعتبارات قانونی به واسطه سر. اگر بود اعتماد میکنه مثلا شخصی بیاد به پسر شما بگه پدرشون گفته برو نام بخن اگر سقه بود اعتماد میکنه سقه نبود نمیکنه اگر سقه نبود پدرش بشه که چرا تو هر فین رو گوش کردی سقه نبود جواب نداد. یا اگر سقه بود بشه که چرا گوش نکردی با این سقه دقیق کنه پس بحث رجیت خبر سقه نما آشماده ایه دائره محدودی داره اونی که ما الان ادعای سیر اغلاده خرج شده ادعای بنای اغلا شده ادعای سیر اغلا شده تنجز اعتبارات قانونی به خبر سه این خلاصه ای بود مثال خوب میخوان میگن بله تنجز پیدا میکنه ما اصطلاحان از کردیم حرف یک مقدماتی داره چند بار از کردیم بعد که جرح شد خودت قصه میکنید یه مراحل بعد از جرح داریم هم تو زندگی ما همینه مرحله اول مرحله ارسال رسول و میگه قدارم تا جل فرمیدن ارسال رسول به انزال کتر این اولش مرحله دوم وصول با مکلفه ما اسمی موشیم تنجد یعنی مکلف با رابطه پیدا رو کنه اسمش موشه تنجد این مباحثی که ما در قطع و زمنایینا میخونیم حول حول شه تنجده عرضش حول حول مرحله به هم هم امتصاله یا اصیانه یا مکلب انجام داری یا انجام نمیدی ما مجموعه هفت مرتبه رو عرض کردیم داریم سه تا قبل از جعله سه مرحله بعد از جعله پس الان محور بحث در بناه و غلا اینه این محور بحث و نظام همونی که برای بناهی میفهموند هر بارشونه اگر ما این بحث رو تصور بکنیم اصلا تخصصه نه وروده نه تخصیص نه چون آیه مبارکه میگه شما دنبال ادراک بدون مستند نرو خوب دقت بکنید و اینم امر رو قلای اوغلا هم میگن در اعتبارات قانونی اگر خبردار این مستنده پس با هم یه مشکل نداره اگر خبره در امور تکیه خبردار این حجته تبیل گفت شما مرض فلان دارید فلان دعوا رو این وجد. یه پیرزنی گفت اساساً راه اینه که اول پیامبر میگه آقا به قول پیرزن عمل نکن که این مستند نیست به قول فقیه عمل بکن. هایمش راضی میگیرن میگن آیه میگه که ما خبرند از سر. اصل ناظر نیست نه اصلا ناظر نیست. خبرش که اگه به خبر باشه معناش اینه که مثلا در پزشکی مثلا در فیزی، مثلا خبر سر که نه 5 روز رقم وجد نداره. یک که نه تن شد تقنیم جمع بشن تو بزیگه از دوست اصلا آیه ناظر به این نیست آیه ناظر به مستنده به پشتوانه اون ادراک علمی شما اگر مستنده درست داره بهش عمل بکن مستنده درست نداره عمل نکن این رفعه اغلاییست اخصاص به آیه نداره که از اون طرف هم اغلا آمده خبره اگر گفت مستنده آیه نمیخواد بگیم آیه شده پس خروج نیست، خوب کنی؟ مساله با ثابت تو صحبت نشده بود چرا؟ صحبت کرد، اگر نه، زن در اینجا یه یعنی خب... علم باید میکردی سوت مساله، ولی علم مساله در سر باشه، هزار درصد باشه. شما زن رفتید تو علم محدود در سر. این نه نه به زن کار نداره زن کانال ذن ادراک نافذ. اگه که این زن نه. ادراکی که مستند نافس داره این ادراکی که مستند لیبرابی اعتماد اگر بنا شد من باهم بر ده تا آزمایش در فیزیک اعتماد بکنم میگم من ده بار آزمایشم در تیچیک دارم این میشه مستند قابل اعتماد خب بنای اوغلا هم میگه؟ میگه بنای اوغلا این هم که در اعتبارات قانونی تنجد رو با خبر سقه میبینه خب برگرد اوغلا شما همیش آقا فرمای توضیح بیشترش عرض میکنه چون فرمای مخونه ارمان اصولاً بنای اوغلا خوب دقت بکنه بنای اوغلا یه چیزی نیست مثل خبر زراره درشون نه رو کنه بنای اوغلا اساسش هم شما هستی ما این توضیحات ساخنه هم حرف کردیم ما در بنای اغلاب نقش ما کاشف نیست مثل خبر زرانی زرانی مطلبی گفته آیا گفته یا نگفته بنایه اغلاب اقوامش بینه بنا در جایید که ما هم جز بشیم و ما هم این کار رو می کنیم او دفت یعنی اگر که سر من سره بشگف معاخذش بکنم چرا هرمش پوش نگریم؟ سر من اگر به من که ما ببینیم ما هم جز به من اقلالی ولذا یک مشکلی در تصورات آیست که آن که این بنا اقلالی چیز خارجی ما باید بریم اشیش بکنیم نه خارجی نیست ما بشیم در این بناعات اقلالی یه خوب دقیقت ادراک ما سر دید. ادراک ما خیلی هم هست ما تحصیل گذ چرا اگر به ما در اثر تاثیر گذار نشی بناغلتیره میسازن به سیره بینه یعنی شما هم در ادراکات قانونیتون تون انتجاج می کنین به که واسه سبب تو گمنان چرا نگرفتی یا بچه راستنمون گرفته بش این چرا نگرفت واسه سبب من گفت هم یحتج علی هم یحتج جدا تخاص میکنید آیا شما این بنار رو میبینید یا نمیبینید اگر نمیبینید پس این بنار واقعا اگر بناه هست که ما عمل میکنیم یا اگر بناه هست همون آقلی که همون که پرمود بدون مستنب نا مستنب داریم کن سیره و لذار اینشاره ما توضیح میدم شاید شما چیز دیگی میکنیم میگیم همچی بناهی ثابت نیست، خب درست دیگر است این بحث سالون بی بوده سبز شما <تصفح> رو گرفتیم چون ثابت دیگی دیگیم اون بنا ثابت نیست یک مطلب بناه هم به این توضیح بنایی که با درش فعالیم نه بناییگه ما درش متحصدیم یعنی ما هم جزو این بناییم خود من هم جزو این بنا شما هم تن تک افراد جزو این بنا هستیم اینجا در توضیحات بنا رو بیشتر توضیحیم و صلی الله علیه محمد العالم